اللهم ارحم جميع العاملين ارحمنا بحث اجمالی بود از کردیم یه مقدار کلمات مرحوم استاد و منعدرس شدیم بحثی رسید که مضمون خطاب آن شکل انساری که قائل به احتضاب بود قائل به اعلیت تامه بودند و می فردن که جای تمسک در روایات نیست عقل به اصطلاح خودش دلالت و تنکیزم از که در بحثی که بین اعلام ما لاجن شده بین دو مقام را فرق بذاشتن حرمت مخالفت قدیه و حجوب موافت قدیه سامنه یا به عبارت دیگر آیا اصول در کده اصراف جایی نمیشه یا در یک طرف بر جایی میشه در طرف دیگه مشکل نداره جایی میشه این تعبیری که الان در کتب ما آمده به این صورت یکی قائل به وجوب موافقه است یکی هم قائل به این که نه مرمت مخالفه دقیه از کلمات م اول از کلمات مرحوم استاد این مطلب رو خیلی واضح متعرض نشدند علاوه بر اون ولی ظاهرا ظاهرا لازمۀ کلامی ایشان را احتمالاً مقرر خوب واضح نندیشه ظاهر کلامیشان این که علت تامه میدونند و قائل به وجود موافقت عتیق هستند ظاهرش اینه یعنی نه چی یکی جایی میدونن نه در این ظاهر حبارات مرموم هایی خویی از کلمترسپانه ایشون تصوری ندارن سریحا نفر میدن اما این بحث آمده و هر شد که نحره ترک بحث بین اعلامی که ما داریم از شیف همسایی به برن این صورته که آیا اصل در هر دو جای نمیشه جایی نمیشه جلال یک طرح بکن به این صورتهای محافظت قطعیه واجبه یعنی اصل اصلا جایی نمیشه یا نه مخالقه قطعیه حرامه این در یکی جایی میشه استلاحی که اوگردن به این حدید من افوضیه استلاح رو بده نو دوباری که در کلمات اعلام آمده انبسی بگید این عنوان اقتدارا در کلمات شیخ نیست لیکن بعدها آمده در کلمات علمای ما حاصل اون نقصه رو با آیا به نحوه الیت تامن حرف کدام از اون یا به نحوه نحو اختیزا مثلا ازیه چون قائل که نسبت به قرمت مخالفه دقیقیه این به نحوه علت است یعنی همه حلم اشمالی ما علت تامن برای تند شد و نمیتونه در هر دو اصول چاری کنه در یکی اشفال مداره نصد به هر دو علت تام است اما نسبت به یکی گفتن اختزاره یعنی اختزار داره که چایی نشه. اما اونطوره شابه تصرف بکنه پس مرادشون از علت تامه یعنی بکن عبد این مرادشون روح به علت تامه که تعدده به خلافش نمیتونه بیاد این اصطلاح هم گفتن علت تامه اما اگر نه بکنه عقل باشه لکن جوری باشه که تحبت به خلابشی یا اسمشی بذاشتن اقتضا این اصطلافی شده بین این و نسبت به هر دو این بحثه کردن هم موجوب محافظت قدعیه هم حرمت مخالفت قدعیه مثلا برامتون گفتن نسبت به هر دو اقتضاست یعنی این ماری هم وجود میاده هم مخالفه مخاله وجود موقع وقتی باش که قتون حالالقطقدی که اون اون جهشه بر سر وجود و هر دو رو به ن به یعنی ممکن است شارط در هر دوسه هم حرف قرار بده نه فقط یک کردم دیگه گفتن نه یعنی مثل نسبت داده شده به مرحوم میشه اینها که ها که لومکنه یا به موم نااری م نا نسبت به موجوب معاقل قطعی قائل به ادریت خرمت مخالف برده ماست نسبت وجود معاقل قائل به اقتضاست این باراته که پایم به اینجا با اونی که در بحث اشتغاله فهم میکنه، یه بحثی دارن در طرح حالا من دیگه خیلی تو اقوال وارز نمیشم، چون محل بحث ما خیلی تأکید روی اقوال نیست پس یه دونه یه بحث راجع به ادریت تامنه هست و اقتضاقی یه بحث راجع به این دو طرفه بعضی قاعد به یه اتامه شدن مطلقا که اشک به این ها مروم ایشون از هم به این دو طرف مرازمه هم حاله یعنی آغازی ها میگه یا قاعد بگیم علم اجماعی اصلا منجز نیست اصل در همه اطلاق جاری میشه یا قاعد بگیم مطلقا منجزه در هیچ طرف جاری جاری میشه نمیشه بگیم یکی جاری به شیئی نشه این خلاصه است که مرموم بلازاریشون امیلیت تامه قاعده و اجازه اختکاره بلو اهل اطراف رو هم نمید مرموم نایلی میگه خرمت مفاده در درست نمیشه اجازه دشاره مطلعه اما دریجی میشه. پس در قیقه اختلاف احساسی بین مرحوم نایلی و مرحوم آزیان توی این قسمته آما که این دوتا مثل هم اگر شما گفتید قرمت مخالقه قدقیه باید قادمشین به وجود مخالقه قدقیه راکش از این دردار اگر گفتید حسید در دوتا جاری نمیشه تو یکی هم جاره نمیشه اگر گفتید حسید در یکی جاره نمیشه تو دوتا هم جاره میشه خلاصه هر مرموم اراقی حسید اراقی این که این دوتا رو از هم ترکیش نکنید و هر دو به نحوه علیت تامه مرگونه محقق ایرامی بنایه می خیلی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه درست نمیشه شارع اجازه بده ارتکاب جمعی اطراف اما یک طرف رو میتونه شاره بهش اتفاق بکنه و واقع بگیم اون طرف دیگه انجام بگیم استلاها مشکل نداره که شاره اجازه بده به مخالفت احتمالیه مخالفت در رو اجازه نمیده اما مخالفت احتمالی اجازه میده یا مطلوب موافقت احتمالی است این خلاصه حرف البته اگر امکان داره البته یه نکته حشو و نکته فنی منظورم این که ما میگیم اجازه بده در یک طرف این الان با اطلاقات نمیشه اثباتش کنیم. مثل کلوشه این ندیب حتی تعلمان نبود یا کلوشه این حلال حتی تعلم اطلاقات برای یک طرف کافی نیست اما تصریح میتونه بکنه بگی اگر دو تا انابود یکیش نجس بود مثلا یکیش ارتکاب کن دقت کنیم مراد ناینه این که ما با این اطلاقات یک طرف رو انجام بدیم ایشون بگیشون ترجیح بلا معجیهه این اطلاقات یک طرف رو هم نمید. ماچین امکان داره شاید یک طرف رو اجازه بده مثلا ما روایتی داریم که دو تا آب یکی مشجده امام میفرمارد هر دو رو بریزه تمام بکنه ایشون میگه ممکن است امام میگه با یه شرمون بکنه یکی بریزه با یکی وضو بگیره این ممکنه درک دارید یکیش رو بریزه با یکیش دیگهش بگیره این امکان داره اما با این اطلاقات کوئی شیخ با این نمیشه پس ناینی شباه نشه مراد لرغم ناینی این نیست که الان با این اطلاقات یک طرف رو انجام بدیم این طرف دیگه رو بکنیم خود ایشان تصریف میکنه که با این اطلاقات نمیشه اگر بخوایم انجام بدیم دلیل خواست روشنجون این اطلاقات کد بشه این لکه حالان این حتی یک طرف رو میگیره اما امکان داره امکانش هست شارف بگه یک طرف رو انجام بده یک طرف رو سر بکن، یک طرف رو رو بخور مشکل ندارد، این امکان دارد یعنی در ذهنیت مردم ناینی اون محالفت قطعیه مهمه یک طرف که همین جامعه که نمیشه اشکال ندارد چرا؟ اون میگه علم همیشه تنجیزش رو مردار همون کاشفیتشه علم شما این است که یک انا نکسته، نه دوتا علم شما این قضا نکن پس شما یک انا, این انا. شما همشه رو نجز قرار بوده یک روشن روشنشون نقطه شما همیشه همچون که علم رو منجز میدونید حد تن چیزش هم به مقدار حد علم علم شما که تا انا نبود علم شما یک اناه حالا که علم شما یک اناه شد شارع میتونه بگه شما از یک اناه اجتناب بکن مقدار علمتون اما به این اطلاعات کلوش این لکه هلا قولو این لکه نمیشه به که تمسک کرد چون این اخلاق هر دو طرف و به الله هدایت میگیره پس به اخلاق نمیشه تمسک کرد اما امکان داره امکان داره من مازیو نه امکان هم نداره شارع نمیشه اگر شارع بنا سو تصرف بکنه بگه تو میتونی یک را انجام بدی و مخالفت احتمالی موظر نیست اونی که دیگه منو میکنه شما که انجام بودید مخالفت میکنه بود. شد و بزرگ بود. پس مرموم آذیا، علت تامه برای هر دو طرف میدانه هم وجود ما و غطیه هم غرمت مخالفه غطیه از شدم مرموم آیخوی مرموم آیخوی مصباح بودی اینجا از الله خاله شدی در اینجا بی این نهر مسئله رو محره نکردن احتمالا مقرر درستن نمیدونم آن من لیکن ظاهرن ایشان حالا اون بحث اشتغال ایشان نشد ببینم اونجا دارن من نشد مراجعه کنم ظاهرن ایشان قائل به اینگرد مثل مرمو باشن حالا تقریبشون با ممکنه فرمو کنه مثل مرمو باشن نه در یک طرف جاری میدونم نه در دو طرف پس این است که آیاش ممکن است شاره در اطراف علم ایجمالی ولو یک طرف رو اجازه به ده اصف در اجرایی بکنه مدعای مرموم نایمی برد نقطه شم واضح نمیشه آزاده میگه چون شما علم دوی یک انا تنجیزم به یک انا پس میشه یک انا دیگه مثلا اون مقدار تنجیز میاره و حرمت مقارکتی. شما نیم شه هردو انجام میدن. اما یکیش شد. آزمایش میگه نه. شما این رو چیجی تصویر میکنید. این تنجیزش چه اساس؟ این که اساساً در اهدای ما خورده یعنی شما این یکی. اما این اهدای ما همان انتزاعیت، اهدای ما واقعی یکی از این دو. این, این مقدار اگر بخواد تنجیز بیاره نسبتش با هردو یک در هر دو احتمال هست این نیست که تلاش فرق کنه اگر بخواد تنجیل بیاره که وجوب موافقه برم داشته باشه خب واسه اون مرزات موافقه دقیقا میخواد اگر بخواد نسبت به یکی نیاره نشه اون یکی رو نمیاره چرا نقطه در طرف یکیه چون خود طرف در هر کنده وارد مرزات یکیه مخالفت احتمالی اگر یادم در یک مخالبت احتمالی با علم شما به این که به عهدهم و خطعاً اجازه بده در طرف دیگرم بدهید شرح بکنید اشکالی که بین این دو بزرگوار وجود دارد من یک مقدار عبارت مرحوم نایینی است از ذال مرحوم نداره چون ممکن است شارح به موافقه این اتفاق بکنه ایشون میگه براوندانی شما در جاهایی که علم تفصیلی دارید شارع میاد به موافقت احتمالی احتفال میکنی چه برسه به علم اجمالی مثلا شما قاعده فراغ رو جاری میکنی گرد میتونی قاعده فراغ نماز خونده شک شکل میکنی شو وقت وقت از این قاعده فراغ میکنی به سهت سا اون که احتمالی سیگه یقینی که نیست. اینه شما احتمال بودی نماز درست باشد در مقابل قاعده بریم علاقه شبال یقینی یک ساز فراغ یقینی شما قصران زمتون به نماز مشغول شد این فرد احتمالیه دیگه این فرد موافقت احتمالی موافقت قطعی که میدید شاهر آمده با موافقت احتمالی تو علم تفصیلی وارد شده خب تو علم مشمالی شما قاعدی تجاوز که جاری میکنید یعنی که ندارید که به اصطلاح رکو انجام دادید یقین یعنی داشتی روکو نکنید وقتی در حال قیام بودید یقینی که شروع کردن نمی آره در حال خرجه است شرط داریم چه قوایده الاشغال الیقینی یعتزی الفراغ الیقینی چطور با وجود یقین تفصیلی به اشغال شار ماهیت احتمال کافی میذونه خب با میکروفون به تلفن چه مشکل داری؟ این ممکن تا وصل صدا ندارم camera نداریم می خاله اطلاعاتی قول یم في ثمرة عملية لا على الطاولة بينهم. ليش ثمرة عملية أنا أقول يوم كن بعبل أدلة. أدلة خسارة. العلاقات لا يمكن تنسبت بیش هول یعنی مقدار تأثیر را به علمی اجمالی کم بدایی در این کتاب فوارد الاسور که تغییرات مرمونای نیست جلد سه سفره هفتاده هم البته ایشون میگه وسیعتی و قد اشبعن الکلام فیداله و مالا مزید حریفی مرحس الاشتغال اگر آقای مایل بودن باز بقولیشون به مالا مزید جلد چهار از این چاپ جام جلد چهار جام این که قطوره اولش برایت ها در جلد چهار صفحه سی و چار 35 سی و ایشون در اونجا مطرح شدن چون ایشون که سه چهار من مختلف مختصرشون رو از اینجا میخورم در, در اونجا ایشون میگه و دعوال ملازمه بین حرمت المخالفت القطعیه و وجوب المع اگر گفت که مخالفت قطعی هرامه محالفت قطعی هم بالی باید شده این ملازمه ایشون بخواد نیست نیز ملازمه این نقطه فرنه اینجاست ممکن است, است بگیر محارمت مخالفت قطعی اما حجوم محالفت قطعی هم بالی یعنی چی؟ یعنی ممکن است بگیر هر دو افتی جاری نیمیشه اما یکیش جاری میشه به بیان دیگه، نیدید ترکیمه ایمار ال ال لانه العلم تامه بالنسبه و با اما يكون. مروم مروم این البته شأن مرحوم آقای مرحوم این همون كلام آقاضیات ازیان من اجزاع از کردم یه مدار سطوح رو پیش نهین خونده رو خیلی به استاد شرحی بره یعنی قوانینی یا ایشون پیششون دیسشن خونده در ایران و اما انلا یکون این مبنای آزی البته از بعد از اینهای نیست ردن کرده کلام های اما این مبنای آزی که ملازمه خائله ایشون می که خیلیه ممالا شارده علیها، ها این ما قبول نداریم نه ممکن در یکی جاری بزید در دوست جاری نشه ولا سبیل ده ها بداحت دلیل ایشان اینه اندر علم, علم اجمالی لایتی داره اندر تو تا علم تفسیری است که ما باید احکمالی و تو علم که ما باید چه ما از او کنه؟ علم کجا؟ مثل باید فرام مثل باید تجاوز علیه اشتغال و یعنی یخصیزی الپراغل یعنی شانه تو به موافقت احتمالی, احتمالی احتفاق کن بعد از نماز شک میکنی شانه او این درست بسه او این درسته او ونشاره الاحتفاق به اطاعت الاحتمالی به علم تفسیلی شاره میتونی توی علم تفسیلی بگه اطاعت احتمالی بکن کم ها به اصول الجاریت فیواد الفرام رو سنسو چرح عبارتی شد چه ممکنه کمی عبارت واضح ذهن نباشه تماما من به علم اجمالی وقدر اشمعن کلام که گاره که از این سر استدلاعی یعنی این شاره میتونه موافقت احتمالی آغازی میگه نه شارع اگر توانست موافقت احتمالی در هر دو باز بگیر نمیشه توی یکی اگر بنا شد به احتمالی اکتباه بکنه و مخالفت احتمالی مضر نباشه در هر دو تفتیق نمیشه این راضی بگیرم اما این مسئله که ایشان مثال زنه این مثالی که ایشان جوابش اینه که این, این طور نیست که شاره گفته موافقت احتمالی نه شاره آمده تو مقام انتصال تو مقام فراغ ذمه گفته من این وجود را قبول دارم نه این که تخرف کرده گفته موافقت احتمالی با یقین کافیه اگر شاره بیاد بگه من در موارد یقین موافقت احتمالی میخوام پس علم این علتقامه داره نیست من توضیح میدم. اصلا تمام بحثو آغازی از اول بحث هم این کار کن اینا اینه چی؟ چون این علم اجمالی فرق تنجیز علمه چون بحث ما اول چی بود؟ علم، علت، تامت، برای تنجیز مرموم آرزی ها میگه اجمال تامت فرق به اجمال تصیب نمیکنه. کنه و اگر علم آمد و علت تامت شد مواقع اجمال احتمال چی؟ یعنی <تصفيق> تو مواقع به ایلت تامنه از موافقه یقین چه موافقه احتمالی بله ممکنه از شارع بیاد در بعضی از موارد یک وجود ناقص رو به منطقه کامل ببینیم این امکان داره. اما این که بگه موافقت احتمالی نه اشارع احتمالی با علم نمیشه لیتا مرموم آزی عبولو من این مدارم عباس آزی رو در جمعه میخونم عبولو بعد احتفال عرض في مقام الفران اما شغله ذمه بلعم من الاتفاق بعد اتفاق اهل خود در حقیقت بلعم من الواقعی و ظاهری خلاق صورینی از ذنبی تصوّر شارع تصرف شارع مقام فرام به جعل بدر یعنی عادیا فرا قبول داره با عادی فرا میگه اینجا شارع تصرف جعل بدر این نکته اوازیه الان من توضیح میدم یک نکته لطیفیه یعنی ما الان در بحث و اصولی یکی از نکات بسیار مهم در بحث و اصولی این است که اگر ما یک پدیدهی در روایات یا یک نکته رو در روایات دیدیم اون رو چطور تفسیر و اصولی بکنیم اون دقت بکنیم ما قادر فراخ داریم علم یقینی هم به اشتغال داریم آنهایی علمم قلط تامن طرق این قواهد با شما علم پیدا بکنید بیدیم که فراغ بذکنه قواهدشون دیگیم شما اون پشت پشتن هم بذاریم شاره آمده گفته اگر شک کردی من قبول بذاریم شما چی کار کردیم سوال تحلیل چیه آزیا تحلیلش اینه که شاره جهنه بدل کرده این تحلیل آزیا شاره نمیتونه بیا تو تندیبه این تحلیل خودم شما علت ساب شاره میدید من این وجود ناقص رو قبول دارم این تثیر آزیه من مرحوم نایدی میگه نشکاره تصرف کرده به چه معنا؟ گفته موافقت احتمالی کافی و هر بازینه شما گره علمه علمه میگه در تامنه میگه در تامنه میگه اگه در تامنه میگه در تامنه میگه شما نگه دید علم علمه علمه تاملا تنال و حوید لا اسماتم و لا نفیم میگه نگه گفتی چطور میگهد علت ایل، تامه از اون را میگهد موافض احتمالی کافیست اگه علت تامه شده با موافض یقینی میخواد روشنیست این نکته این یک نکته بسیار زریف و لطیفی حرف آزیا و حرف نایمی این از اون است که هم سرم منکرارن اماقا من مکتب اصولی شیع مرز شیف زمینه ها رو برای این کار شدیه روشن کرد نبود در قلیب ولی این یه رسول مثلا سنگی هم این بواسته الباز و من البازون اونام اموم زیاد کار کردن اما تو این بحث قاملی انصافه این متعکل نیشه بیشتر کار کردن روشن بحث چی؟ بحث این هست که اگر شما آمدید گفتید علم... از خود علم رو چی میدین؟ خود من دقاید نبودن علم این علت تامنه برای تنجیز این من داری من بولید رو مباری ما میکنه مشکل نگاه شما آم لاک سنالو یدم اگر علت ثانمشو شد یعینی میخوای چطور میگی موافقه احتمالی چون موافقه احتمالی مخالف یقین اولا تو خاصیه ازون موافقه یینیو نمیخوام من مرهمان دارین که اشکارا شاهد به طرف خب من موافقه میگم خب موالی نیست که چون چون علت پس چه که خب پس میگی میگه من میگم قاعده یک وجود ناقص شاره قبولش کرده نه دو شاره معاقد احتمالی او که لا آرویت رو جرد بالا با لازتن آرویت رو جرد نمیسا این ای این این دید اینجا زیاد نانیر گفت یه خمسه زرزتون باستن قدردین کلام آقا زیاد آقای خوی هم راه دیگری رفتن حالا نرمشن آقای خوی اینجا آقای خوی از چرا رفتن ایشون قاعده فلاق رو اغلا شما آقای خویی؟ دیگه در بحث مواقعه احتمالی من من در چهره بزن دقیقی این رو تفنیشی شد این ذرافه خدا رو کنم میدونه بحث مثلا خویی قاعده فراغ رو اغلایی میدونن درست در اشتغال و یقینی یکتر داره فراغ و یقینی او فراغی تعبدی یعنی فراغ رو منظر مواقعه حجت چون اماره و اغلایی میشه بشه حجت پس قاعده چرا آیون؟ دخلت کردی؟ پس سه تا آنه دو تا داره این چرا مرموم آزیا، مرموم نایمی متعرضی این مردانشون؟ چه تو زهنشون نبود که قاعده فراغ ترک گوغلاییه اینا قاعده فراغ تبدی میدونن پس این مردان هم اضافه شد که قاعده فراغ آیا حجته و هماره و اوغلایی و شاره همین روغلایی به گفته به اندازی هم روغلایی چون علی اشتغال اینی یه فردی خرابیه اینی یا فراغی که حجت باشه و قاضی برایم حجت و این که این دو بزرگوار بحث کردن، نشون دادیم بطوری که بزرگوار یا که بحث ما خارج شد. قبلا این وارد نمیشه چرا؟ چون قائد خرابی بحث اقلادی است. اگر ممکن که جذی نگوار، تو قائد سال فریدو، یا تو جذی ممکن وارد بشه. تو قائد خرابی نقد نمیاد. چون اون اصولا هجه ده چون اماره و غلاله الاشتغال الیقینی یا, یا فراغی که قامت علی الهجه یا قامت علی الهجه روزه شدید تشمیل های اصولی خیلی مهمه فوق العاده این نکات قانونی یعنی شما سرد کنیم اون زیر بناه ها رو تخبراتش رو نه این رو بناه این رو بناه پس من هم تفسیرش اینه که یه جهل بدره نه اینکه شارع گفت مواقعه احتمالی با علم تفسیبی که بگید همه برنو که به علم نشمادی و این صاحب هم, هم با و آغازی هستیم باید تفسیر دیگه بکنید یعنی شما اگر اون موقع قبول کردی خودت خص بکنید این رو ایلت تامنه گرفتید و غلاطنال روید رو جرگ گرفتی باید اینجا یه جوابی بدید این که نمیشه معافلت احتمالی که کافی این تحلیمش کافی میسه انصابه یا باید از اون الیلیت رفعیت بکنید چطور میشه علت تامه باشه وقت شار محالا به احتمالی اجازه باشه خب نمیشه که اگر علت تام شد علت تامه از این چی اینه قطعا باید محافظ یقین باشه علت تامه مناشم اینه تامه پس اون بحثی که آن مرتکب که انصافا این بحثی آقای کارمی بشید چه ای داره این انصافا نقطه فنی و علمی داره یعنی باید این مثلا روشن بشه اون جهات آمونیش باید کاملا و حقوقیش تفسیر بشه. فلا و اینه از این فی تصرف شاره فی مقام الفرا لکن به که علی بدن نه که شارع تصرف کرده قبول موافقت احتمالی یه <تصفح> نمیشه موافقت احتمالی قبول نکرده آمده جعل بدل کرده که مواقع و شن فیل علم تفصیلی به درم قادر فرام و این حاضا صرف ترخیص فی بعض الاطراف اما این که بیاد ترخیصه در بعضی از اطراف بده بلا تصرفی مقامل فراغ و جعلی هی بدلن حملباه بله، برای تو علم اجمالی هم میتونی این کار رو کنه تو علم مالی جعل بدل بکنه نه تو علم اجمالی بیاد بگه موافقت بله بگه بله. تو میدونی یکی سه من میگم نجد اینه اون یکی دیگه نیست این تصرف ممکنه اما توی قواهد امتصال و قواهد تنجیز نیمه مثل او قاعدی تنجیز نمیزند سرخ کنه تنجیز علم با حالا خودش محکوزه کیف مثل حادث ترخیص ایوان قیروزارن ای پر علم تفصیلی ایوان و حین ازم لیسه در انجال استشهاد مثل جعل بدل پر مقامه علاجواز ترخیصی اهد طرفه بلا تعین مفرقه و جعل بدله مفرد واسطه و کلام موکول الهی به محلی که بحث الاشراق من مش مرون واقعی و حواشی جمع بده تو همون دل چهاری گفته اونجا بود عادی هاشیه حاشیه همون دل چهار که مرعونایی رو تفصیل در دل به چهار از صفحه و به بعد مرعونایی مطرح شده همونجا به عادی داره. این داده راجع به کلام مرون چون خب ان تا الله تعالی این بحث تا اینجا روشن شد برای آیان که من معاضی این مسئله رو می زدم دیگران به اصل حدیه که علم ما یه آشان به اینکه مطلب روشنی که بردید به بحثه که در چند ماه گذشته کردیم. از کردن در این که علم کاشفیت داره بلکه کشف این ذاتشو بلکه عباد مخرای اون است زات ذات مطلب نیست علم این کشفیه کشفیه که ایچ فرق باهم این درش بحثی نیست بحثی رو که از زمان شیخ مطرح شده به این صورت مستقلن امزای قبلشی همه هست اما مستقلن نیست اون بحث این که آیا سر حجیت همین کاشفیت این اصول متاخر ما این کاره کرده اینه که بیان علت تامهی بریم میگی اونا میگن حجیت این کاشفیه چطور کشم ذات قرده حجیتش هم ذات اینا یعنی من توضیح بدم کراما من موازیه حرفشینه اگر شما این مبنا رو قبول کردید یا به طریق اب طریق ابزیه اینطوری یه تجزیهی حجیت قد تجزیی یعنی چیزی یعنی علت تامه تعلیقی نیست اگر تعلیقی بود یعنی شارع میتونه بگه اینجا علم وجدیه میشه تعلیقی مرتضیه خاصی از تعلیق میگه حجیت علم تجزیی است یعنی علت تامه یعنی عقل قبول می‌کنه سر و عقل حفظ و عقل چیه؟ سر و شکر کردم هست حجیت و مرادف با کشف میدونن کشف کن که ذات علمه روشنش بود به تعدیل ایشان حجیت تنجیدیست ما به دنبال این هم ولی دا میگه، آزیانید مرموم نانی حجیت علم ذاتیست به تعدیل ایشان حجیت زن چون یه مقدار کشف داره تعبودیست حجیت شک و احتمال مقبول نیست چون از کش ندارد. اون در روزهای حجیت اعتزازی، حجیت زمیت عبودی. شنیدم از کش داره میشه اون تاچین کش کنه؟ اما شک و احتمال شما از دنیا خراب باج نباشید. اینکه کش ندارد شکی کش ندارد. شک و احتمال کش ندارد. چون کشم نداره اصلا حجیت معبولیست اصلا جهرم نمیشه زادی که نیستی چی تعبودی هم نیست. اصلا امکان جعل حجیت برای احتمال وجود نداره چون کشم نداره روشنگ تو تمام سر مطلب چیه؟ پس سر این بحثی که از زمان شیخ مطلب شده تا زمان ما این نقطه یه اختلاف بنده هم با این بود که حجیت مسابقه با کش نیست کاشفیت زمینه جعل جهر حجیت یک مقروله است، یک مقروله جهبی هست بله اگر کشف بود زمینه هست ولی حجیت و طبعا اگر آنی ترین درجه کشف بود اون زمینه قوی کرده. اما اینطور نیست اگر علم آمد حتما هم حجیت گنبالش باشه پس یک بحث و زا به نظر ما شارع میتونه بگه تو از سیات علم پیدا کردی این علم حجیت نیست این آهایون گیر دارن میگه نه شاره گفته علم پیدا نکن آقایی جون مرده اختلاف آه. ما با آقایی در اینجا اینا میگن که اگر شما علم از قیاس پیدا کردی شاره میگه تو بیخون علم پیدا کردی این تشکیف میکنه که علم تو ببره ما میگهیم نه این چا خود رو چیزی نمیسیم قول عجیب خرید میگه پیدا بکنیم قیاس باطله در شریعت قیاس نمیشه پیاس باطله چون قیاس باطله ولی علمم پیدا این echte اخت... وایس پس در علم این بنسه علم اجمالی فر اونجاست. حرف مرحوم آغازیار و مرحوم نائمی چون یک معنا دارن. سر مبنای این دو بزرگوار در اینجاست حجیت و تابع کش گرفتن. البته من توضیحات بسیار مفصل دارم که حجیت هم دو جور میشه برقرار کرد. یکی این که وقتی کشف آمد و علم آمد شما عمل میکنید که این زواهر عبادشه بایی بیشتر میخوره. یکی این که وقتی علم آمد این انتباه صورت می شه. این انتباه صورت برای داعویت کافیه چون انصم حجیت به دو قیاس میشه. یکی به مقدار داعی برای من یکی به مقدار عمل انجام دادن مثلا به من گفتن که پدر از گفته برو نان بخن یه دفع این دایی بشه که من برم به طرف نانبایی یه داری عملا نان بخنم بحث این که آیا وقتی از حجیت دو تا مرمه از اجتباه نشه ما فعلاً تمام بحث بار و انتباهش سوره از این دایی که اصطلاحاً اسم شروحیم قرض عدنا عمل برم اسم شروحیم قرض عقصاها روشن شد دو تا نکته پس منابردی اولا دقت بکن لذا مره هم آدیا میگه اگر ما حجیت رو تابعه کش دانستیم و تشمه علت پاونه شد دیگه ترخیص امکان نداره شما چه ترخیص حتی با معافلات احتماله امکان نداره و همیگه در شریعت مواردی آمده اگر مواردی آمده باید قادل به جهل بدن بشیم مثلا از کرده. مثل آقوری هم یه مشکل نداره چیزی گزم اصلا این موردن دارم رو حجر قدره اون حجر و قلعایی روشنش چی؟ بحث به کجا رفیده حس فنابراین مرحوم آزیا میگه امکان نداره مرحوم نایمی میگه امکان نداره انصافه هم همه آزیاست بینید و بینید یعنی همه آزیاست رو اون مبنا رو مبنای ما همه آزیای میگه شما قالبه به ما نیستیم یعنی اگر کسی قائل به علت تام بشه هر واضیو مثلا ما با درختون با باو در با در از قدم ظاهره هم مسئله چه در علم اجمالی احتمالاً نشه نگاه بکن تو اشتغال نمیشه اینجا اینجوری نمیشه اما ظاهرا ماضیه نقطه تثبیت نه لازم نقطه کلامیشو حاصل اثر کلامیشو مثل بر مواضیا پیش می کنه ان شاء کسی علت تام قائل شد علت تام نه همین بود ظاهره البته ما این شاید که نوز شد فردای تفسیر دیگری من همه پس خلاصه هر بسینه که علم برای روشن علم کشک کاشه بید در علم اجمالی هم شما ارتباط با واقع پیدا کردید اگر شما گفتید موافقت احتمالی کافی خوش خب شما هر بار انجام دهد چون در هر رو مقالبت اون که در نتیجه علم الهی موجب مذر میشه یعنی طوری که من علم بگم احزاب عنای نگسه کده اثر تاثیر داره بنابر این هر تعریفی هست که شما دست علم رو با هم مخلوط کنید نمی‌خواید اما هر یک دانه دونه اش داره اما مهم ما معلومه که مخرب نمیشه اون علم که چیزی که تاثیر اون علم کجاست اینجاست چون اگر شما گفتین علم ما باید مثلا به این باشه که دقیقاً بدونیم مثل شبیه کلام مجلسی حتی تعرف حرام من منها بینه اگر معرفت حرام بینن خب هر دون میتونه تواند جامعه چون در کل وحاده تعرف حرام بینه نیست این صرف بحثی رو که الان امروز مطرح فرح کردیم و از طرف دیگه من الان این نفتر مزرد من فرز توصی. من اون اونهایی بلیش روشن بشن یک نفتی رو من از بزن. مردم یه اجازه میده شارع در یک کرم شو ممکن است این شارع در هر طرفه ممکن اجازه بده مثلا گفت هر طرفه حرام منو بگیره جوابش توضیح ببینید شاره میتونه هر طرفه اجازه بده بله خودی قسمی باز همون نکته ای که من عرض کردم تفسیر حقوقی و قانونی باز بده اگر شارع و شو نمیدونین دو الانان هست معذالت که هر دو رو چور مثلا جواب ممکنه؟ بله ممکنه لکه این یک معناش اینه یک معناش اینه که این رو شاره در اونجا موضوعی گرفت یک معنی دیگه هم داره که پردار ممکنه یعنی دیگه اون نجست معلوم یا جهول اجتنابه اونجا نجست معلوم نیست دقیق بکنی اینه که آغازی ها میگه شما میگه ترسیز در یک طرف بده آغازی میگه این ترسیز نیست این جهنه بده یکی بنده ارگاه بکنه ترخیص در هر هم ممکنه بده دقیق کنه ترخیص در هر سرمش بده هر دار ارجام هر داره اله تعاقب نهی که با هم بکنی چرا این کار ممکنه بشه بله اما این ترخیص در اطراف علم اجمالی می نیست این یک معناش این هست که چون علمو موضوع می از معلوم و نجد تجوله سلام هم و ممکنه هم. اون باید اگر علم... علم موضوعی شد نقصه رو خوب دکت رو کنی دیگه از دست علم اجمالی خارجه ساله <تصفيق> روزه ها موضوع باشی ما در روز اول این نقصه رو باید انت کردم اصلا فرض علم اجمالی است که علم طریقی باشه علم اگر موضوعی باشه قطعا علم اجمالی منجز نیست چون کلوهای در مرمون نجز نیست باید علم نهم طریقی باشه معلوم ندست نجس یا جبال اجتماع باهم. پس بنابراین دکت بکنید مجرد این که دیدیم شارع ترخیص دار ترخیص معنی ترخیص در مخالفت نیست تفسیر قانونی داره این ترخیص رو به یک معناه هم بکنیم بلکه اینکه شارع رو در باب نجاست موضوعی گرفته علم ترخیصی تا علم موضوعی شد علم اجمالی نیست از اینکه از بحث این مجموعه خارجی الله علیه و آله عرض و فرع